اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین بحث مالکیت فکری جلسه هجدهم بعد از بیان ادله موافقین و مخالفین با حقوق مالکیت فکری و بعد از بیان انهاع احراز مالکیت ها تا کنون به اینجا رسیدیم که میشود از راه حیازت به معنای عام بگوییم کسی که اثری رو اثر فکری و هنری رو خلق می کند او میتواند و مالک عملا هست نسبت به اون اثری خلق کرده ام از اینکه به سبت رسیده باشد یا نه یعنی به حسب سبوت او مالک هست اگرش که مقام، حسب مقام اثبات از راه ثبت یا از طرق دیگر باید اثبات بشه در رابطه با مالکیت امور فکری بعضی از امور هستند که اونها هم جز همین محدوده حساب میشن مانند اوراق ایده و فکر که اینا یه اوراق بهاداری هستند که می شود این اوراق رو از طرف کسانی که تراهند و فکورند نسبت به برنامه هایی که دارند اینها رو به شرکت ها و کارخانه‌های تولیدی به اونها فروخت خب تشکلی درست شده است که صاحبان ایده های علمی و فرهنگی چون خودشون غالبا منابع الماله لازمون ندارن که ایدهشون رو به سمر برسانند و از طرفی چون سازمان رو هم که این افکارشون و ترهاشونو رو به اونجا معرفی کنند غالبا میرفتن با شرکت های خارجی معامله میکردند شرکت های تولید و کارکنه های سنتی اونا برای اینکه محصولاتشون بهبود پیدا کنه احتیاج به افکار نو و جدید و ترهای خلاقانه جدید علمی داشتند لذا تشکل ایجاد شد که رابط باشه بین صاحبان فکر و ایده که تولید کننده ترها هستند و خود تولید کنندگانی که بناست این ترها را در مرحله اجرا به وجود بیاورند بنابراین سازمانی به نام سازمان بورس و اوراق بهادار به وجود آمد و این منشاء شد که تولیدات علمی و فرهنگی ارتقا پیدا بکنه و زودتر به پیشرفت‌های علمی نائل بشوند خب در بخش اختراعات و اکتشافات افرادی که اختراعی دارند و اختراعشون به ثبت میرسونند اینو میتونن اکتشافشون رو در بازارهای فکری عرضه بکنند و از اون طرف اون صاحبان بونگا و صنایعی که به این اختراع نیاز دارند یا اختراع رو از صاحب ایده میخرند یا در تجاری سازی با صاحب این کشف و اختراع شریک میشن لذا تأمین منابع مالی لازم برای عملیاتی کردن این فکرها و ایده ها که قبلا هم،, هم منابع مالی قابل توجهی دارند از این طریق صورت میگیره و کار راه میفته خب پس بنابراین یکی از اموری که امروزه رایجه و مورد معامله است و تداول هم داره این است که سازمان بورس اوراق بهادار یه رابطی بین دانشگاه و صنعت که برای پیشرفت صنعت اینها میان فرصت کسب درآمد رو برای کسانی که صاحب این فکر و ترا هستند و باعث اشتغال زایی در کشور میشه و در نتیجه باعث حفظ نخبگان ملی از ظرفیت فکری اینا استفاده میکنند و جایگاه کشور رو در عرصه ملل بالا می برند خب در رابطه با اینکه این افکار و ترها و ایده ها به عنوان ملکیت تحت مالکیت مختره قرار میگیره مبانی مختلفی در دنیا آمده ترک کردهاند کرده ان. که امدتن هم از مغرب زمین آمده است. اونی که در دایره احکام و حقوق اسلامی می شود گفت مسئله دایر مدار در این سه مرحله است یک آیا این ترها و فکرها مال حساب می شود یا نه دو آیا به ملکیت در می‌آیند یا نه و قابل تملک‌اند یا نه؟ سه آیا اینها منشأ حق و حقوق می شوند یا نه؟ چرا چه بسا اشیایی هستند که ولو وجود خارجی دارند ولی مالیت ندارند؟ مثلا پر کاه یا خود هوا یا مشتی خاک اینها از نظر عرف و اقلا مالیت برشون قائل نیستند بعضی اجتماع مالیت دارند ولی از نظر شرعی ملکیتی بر اونا فرض نمی شود یا بفرمون شار مالیت شرعی اینا رو قبول ندارد فرض کنید مثل شراب یا مثل خوک و امثال اینجور چیزها بعضی از امور هستن که مالیت دارند به ملکیت هم در میان ولی موجه به حق نمی شود. مانند افت... افراد محجور، مفلس، ورشکسته یا به فرمایید یا مجنون اینا مال دارن ملک اینام هست ولی خودشون نمیتونن تصرف کنن لذا ولی اونها قیم اونها اونها حق تصرف دارند و خود اینها که مالک هستن حق تصرف ندارن خب در رابطه با انوال فکری این سه مرحله اگر ثابت بشه که اینا مالیت دارند قابل تملک هستند و منشع حق و حقوق میشوند، شوند اونگاه مالکیت فکری امری می شود کاملا شرعی و مباه و حلال که دارای آثار شرعی است اما در رابطه با منشع مالکیت امور فکری در دنیا نظریه های مختلفی بیان شده است که این نظریات مبتنی هستند بر حقوق طبیعی به این معنا که میگویند بعضی از حقها از قانون الهی، طبیعت و خرد سرچشمه میگیرند. یا به تعبیری حقوق فطری یا طبیعی هستند که از سرشت و ذات بشر برمیخیزند لذا بر اساس او و مطابق با او قانون جعل میشود به این حقوق به جامعه مدنی وابسته است لذا در یونسکو سندی وجود دارد، بله که مفهوم حقوق بشر به او اشاره شده که سابقه طولانی هم دارد و همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم گفته شده است که نسبت به کسانی که کار فکری دارند بله، حق طبیعی هر معلفی است که از طرف دولت مورد حمایت قرار بگیرن هم نسبت به حقوق مادی کار خودشون هم نسبت به حقوق معنوی خب حالا از این جهت که مالکیت فکری های مختلف میتواند داشته باشد یا دیدگاههای مختلفی وجود دارد در رابطه با مالکیت این امور در اینجا چند نظریه اقامه شده یک نظریه نظریه کار است که قائلند اون چیزی که منشأ مالکیت می شود آن کاری است که بشر انجام میدهد و این باعث میشه حق مالکیت و اون حق طبیعی برای اون کسی این کار رو انجام داده به وجود بیاید خب و در نتیجه گفتن دولت هم لازم است که از این مالکیت دفاع و حمایت بکنند این کسانی که قاله به نظری کارند برای اثبات نظر خودشون چند تا مقدمه را ذکر میکنند یک یعنی خداوند جهان را به صورت مشترک به همه بشر داده است دو هر شخصی مالک خودشه سه هرگاه کسی کار خودش رو با مشترکاتی درآمیزد و از راه اموری که مشترک بین هم است فعالیت رو انجام بدهد اون را ملک خودش کرده است و چهار یعنی حق مالکیت مشروطه به اینه که اصراف نکنه چیزی رو هم برای دیگران واگذار کند خب لذا قائلن که از جانب خداوند متعال بعضی از حقوق برای بشر به ودیعه گذاشته شده و خدا به انسان عقل داده حق خودش رو بشناسه که امروز بشمن حقوق طبیعی یا حقوق بشر بعد من اگر انسان با طبیعت یه جوری فعالیت بکنه که حاصل کار او از مالکیت اشتراکی خارج بشه به مالکیت اختصاصی فرد در می آید ولذا مالکت فکری مانند اختراع و مانند این با این نظریه کار قابل تطبیق است بله چون میگن کسی که تعلیفی میکنه چیزی به وجود می آره، این حق ناشی از کار اوست، تابع حقوق کار است خب بنابراین اگر کسی کاری انجام داد و بر اثر کار خودش چه حالا کار جارهی و بدنی یا کار جانحی و فکری و قلبی این کار منشه حق می شود و اون انسانی که کار خاص روشهی انجام چیزی رو تولید کرده و به وجود آورده است این مستحق مالکیت است و استحقاق دریافت موز رو هم دارد خب این یک نظریه ولی اختراعات رو میگن جزء اموال فکری حساب میکنیم و قابل حمایت هم هست پس بنابراین چیزی که بر او کار انجام شده است وقت نسبت به او صرف شده و با کمک منابعی که خدا به جامعه داده است و خلاقیتی خود فرد به وجود آورده است چیزی تولید می شود که این منشأ مالکیت برای این کارگر کارگر کار فکری به وجود می آورد خب دومین نظریه نظریه شخصیت هست این نظره شخصیت که جذابیت زیادی هم دارد این چنین ادعا می کند که مالکیت در رابطه با شخصیت انسان و احساس شخصیت انسان و بالندگی و شکوفایی خودش منشأ می شود که چیزی ملک او بشود و این مالکیت با مفاهیمی مثل آزادی و کرامت انسانی پیوند داره. لذا لازمه شخصیت انسان و شخص بودن اینه که نوعی کنترل بر اشیاء داشته باشد. طبق این نظریه به جای اینکه تاکید بر کار بکنن یا منفعت که بعد خواهد آمد، تمام توجه رو به شخصیت و حقوق مرتبط به شخصیت منعطف می کنند و در این نظریه مالکیت فکری از طریق تحلیل شخصیت افراد به دست می آید. در رابطه با نظریه شخصیت تفاصیر مختلفی شده است کلن دو گروه در رابطه با نظریه شخصیت دو تا تفسیر مختلف دارند یک نظریه شخصیت مطابق با برداشتهای سنتی که اینها اعتقاد دارند که نظام امتیاز در بعضی از کشورها منجر به این شده است که قانونی تصویب بکنند در رابطه با کپیرویت در انگلیس که این رو منشه انقلاب در مالکت فکسی می‌دانند و که میگن کسانی که آثار فکری و مکتوب به وجود می آورند آن که به اینها میگن معلف و اون کسی که از طریق مکتوبی که مربوط به شخص دیگری است در ارتباط با جامعه است، به او میگن ناشر. اگر ناشر با اجازه اون نویسنده کتاب رو انتشار بده این قانونی و الا غیر است و سارق حساب میشود. خب میگن کتاب جایگزین جنبه ذهنی شخصیت انسانی است مالکیت آماده میکنه یک ساز و کاری را که انسانها به وسیله اون به خود اثباتی دست پیدا می‌کنند. خودشون رو ثابت بکنند. و حقوق مالکیت هم که از طرف جامعه به اینها داده میشد باعث میشود که این خود اثباتی محقق بشود. خب با اثبات چنین مالکیتی میگن نظام نزاع میان آدمیان دیگه تمام میشود و کسی مال دیگری رو چپاول نمیتواند بکند و این مالکیت هم مربوط به امور مادی مادیس هم فکری و لذا دیدگاه مالکیت یعنی افراد رو قادر میکنه که شخصیت کامل انسان خودشون رو آزاد بکنند و احراز بکنند و از نظر صاحبان این نظر مثل هگل اراده رو باراترین جایگاه در ساختار فکری انسان تصور می‌کنند و میگن انسان با تملک اشیاء خارجی اراده خودش رو به فعلیت درمی‌آورد خب نظریه شخصیت توسط فیلسوفان معاصر این است که اینها در رابطه با انسان بر مفاهیمی مثل آزادی، حریم خصوصی، کرامت انسانی و از سامان بخشیدن بخیش تأکید می و می گن مالکیت خصوصی ابزار تأمین ارزشهای است خب لذا مالکیت خصوصی می ابزار حاکمیت یک فرد است و باعث میشه سرطه بر برخشی باعث استقلال و خودسامانه یک فرد میشود و مالکت خصوصی رو از ضروریات زندگی میدانند که باعث میشه وابستگی بین افراد کم بشود خب و قدرت فرد بیشتر میشود و مالکت خصوصی سبب میشود که حریم خصوصی افراد مستحکم بشود طبق این نظر اندیشه و فکر یک جلوه است از شخصیت یا خیشتن اون فردی که پدیدوارنده این فکر و اندیشه است البته این نظریه مختص به آثار ادبی و هنری نیست همه آثار فکرش شامل می شود. اختراعات، علائم تجاری و نظریه اینها که جامعشون ای که همه اینها بازتاب شخصیت خالق اون آثار فکری هستند. نظریه سومی که در رابطه با مالکیت مطرح شده، نظریه منفعت گرایی است و صاحبان این نظریه اینم باز در مکاتب فلسفی غرب هست برمیگرده به اصالت منفعت یا سودمندی این مکتب رو میگن مکتب فایده گرایی مثلا میگن سعادت انسان در این است که تا میتواند جلب منفعت بکند از این فلسفه شده فلسفه انتفاعی بیشترش گفتن فلسفه سودجویی خب طبق این نظریه گفتن بشر کلا این چنین آفریده شده است که میخواهد منفعت خودش را جلب بکند و درد و علم را از خودش دور بکنه انسان به طب جاذب منفعت است و دافع علم ولذا میگن این کسب لذت و دفع علم اینا عرباب مقتدر لذت و علم هستند صاحب المكتب مکتب برای اینکه تعریف کنن و محاسبه کنن لذت و علم را یعنی عوامل و فاکتورهایی باید مدنظر باشد یک شدت دو دوام سه میزان اعتقاد و یقین چهارم فراست پنجم باوروری ششم خلوص هفتم وسعت پس بنابراین انسان چون طبیعتش جلب منفعت است و دفع ضرر لذا هر چیزی که انسان رو در رابطه با این هدف یاری بکنه و منشأ وجود شیعی بشود این منشأ مالکیت انسان هم می شود لذا منافع و منفعت داشتن شرط ضروری صاحب حق بودن است که انسان نسبت به چیزی صاحب حق بشود و اینم مربوط هست به موجوداتی که دارای شعور هستند یعنی درد را و لذت رو درک کنند که منحصر به انسان خواهد شد خب لذا میگن مالکیت به دلیل اینکه سود و منفعتی به انسان میرساند قابل ستایش است لذا بشر به حسب طبیعت هیچ‌وقت کار خلاقانه رو بدون اینکه مالک پاداش اون باشه انجام نمیده و این حس و غریزه انسان خیلی محترم است و قابل حمایت و این باعث مالکیت انسان نسبت به اموری می شود که توسط او بر اساس اون دو تا انگیزه به وجود می آید. خب به طور کلی اونهایی که فایدگراه هستند مالکیت رو مشروط به این میدانند که موجب پیشرفت اهداف جامعه بشه به منظور رفاه و ثروت جامعه افزایش بدهد ولی زاحتن ملاک برای اثبات و تایید مالکیت این چیز این است که کاری باشد که به رفاه اجتماعی و تعمین خوشبختی انسان توجه داشته باشه خب و لذا قانون گذاران وقتی میخوان قانون بگذارند اینها باید قوانین را منصفانه گونه ای جعل کنند که برای منافع عمومی بتونه تعادل برقرار بکنه و قوانین در راستای منافع همگانی جامعه باشد البته این کسانی که منفعت هستند و ملاک مالکیت رو داشتن منفعت چیزی می برای منفعت و سودمندی ملاک مشخص رو معرفی نمی کنند الزام محاسبه لذت و رنج افراد و منفعت و ضررها براحتی راحتی امکان پذیر نیست و مقایسه بین سودمندی‌ها و دردها خیلی کار مشکلی است و نکته دیگر و مشکل دیگر این نظریه این است که در اینجا منافع اجتماع بر منافع فردی ترجیح داده شده یعنی همیشه منافع فردی باید محکوم منافع اجتماعی باشد نظام مالکیت هنگامی و تا موقعی هست و ارزش و احترام دارد که رو منافع عام به وجود بیاد اگر نیاد نه این مالکیت ارزشی نداره و یا ارزش والایی بر او قائل نمی شود به هر جهت این سه تا نظریه است در رابطه با منشأ به وجود آمدن مالکیت که در مکاتب غربی تر شده است اما به نظر ما اینها همه یا از آثار مالکیت است یا منشأهای تکوینی مالکیت تعریف خود مالکیت نیست. مالکیت عبارت است از, از سلطه فرد بر ای که اختیار این شیء به دست این فرد مسلط باشد به طوری که دیگران بدون اذن او و رضایت او حق تصرف در این شیء را نداشته باشند. این میشه مالکیت؟ پس بنابراین، اینکه حالا آیا غریزه بشر جالب منفعت است و دافعه ضرر یا اینکه کار کردن فقط منشأ مالکیت می شود یا نظریه دیگری که گفته شده است بله مثل من من نظریه منفعت گرایی تمام اینها از عوارض مالکیتن یا از مناشعه منشأهای تحصیل مالن خود اینا رو نمی شود مالکیت به نظر ما اون که می توان گفت این است که کارهای فکری هنری همین اموال فکری و معنوی طبق اصطلاح دیگر از نظر اغلاه این مال حساب می شود مال لازم نیست امر محسوس مادی باشد غیر اینها هم بر اینها مال صدق می کند و می توان به اینها مال گفت ولو امر محسوس و مادی نباشد و نمونه های ما در فقه خودمون داریم و مثال های هم هست که مثلا ما داریم در کتاب خلاف شیخ توسی که میگه اگر کسی میخواهد مهریه برای زن خودش قرار بدهد میتواند این محریه را تعلیم قرآن قرار بدهد خلاف شیخ توسی جلد 4 صفحه 366 یا آموختن آیه یا شعر مباهی یا تعلیم خیاطی قرار بدهد به عنوان صداق قرار بگیرد سیدم بله در کتاب انتصار همین مطلب رو دارد که تعلیم یک شیء آموختن فن و هنر این به عنوان صداق قرار بگیرد زیرا از نظر مال بودن امور فکری شک و شبهه‌ای نیست اما اینو به ملکیتی کسی هم در می‌آیند آری از باب اینکه اون طرف خالق و سانه و به وجود آورنده این فکر و طرح و عقیده است تکوینا مالک حساب می شود. البته باذن الله چون او به وجود آورده کسی که ایجاد کرده شیئی را طبیعتا این در ملک او هم خواهد بود و حیازت به منععم البته و رو صدق میکند و در مرحله سوم بعد این ملکیت منشأ حقم میشود بتواند مبادله کند بفروشد من کند از اینکه دیگران در او تصرف کنند اجازه نقل و انتقال بدهد و انواع تصرفات صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین